اونا شنبه 3 آگوست 2013 عصر تام با چند تا از دوستایی نظامیش به صرف نوشیدنی دور هم جمع شدن و ایو داره چرتشو میزنه من نشستم تو آش خونه. درا و ها با اینکه هوا گرمه بستن بارون هفته گذشته بالاخره دیگه بند اومد حالا هوا است. حوصله‌ام سر رفته حتی حوصله ندارم یک کاری بکنم تا از بیحسلگی در بیام دلم میخ برم فروشگاه یه ذره پول بر خودم خرش کنم اما این فکر با وجود ایو مایوس کننده است میترسم بد اخلاقی کنه و اینجوری دچار استرس میشه. بر همین فقط تو خونه ول میگردم نمیتونم تلویزیون تماشا کنم یا حتی به روزنامه ها نگاهی بندازم نمیخوام چیزی راجع بهش بخونم نمیخوام صورت مگانو ببینم نمیخوام بهش فکر کنم چطور میشه بهش فکر نکرد وقتی فاصله ما فقط چهار تا دره، به دور زنگ زنگ میزنم تا ببینم کسی میاد یکم پیش ایو بمونه یا نه، اما هر یه برنامه داره، حتی به خواهرم هم زنگ زدم. هرچند باید یه هفته پیش براش کتاب میگرفتم، در هر صورت اون گفت وقتی پیش ایوه سردرد میگیره، بعدش من درد وحشتناک حسادت و احساس کردم. حسرت اینکه روزه شنبه رو رو مبل دراز بکشم و روزنامه بخونم و یه خاطره گنگ از کلوب شب قبل رو مرور کنم. واقعاً احمقانه است. چون زندگی من الان میلیون بار بهتره و من برای حفظش فداکاری کردم. حالا فقط باید ازش محافظت کنم. برای همین میشینم توی خونه گرمم و سعی میکنم به هیچ چیزی درباره میگان فکر نکنم. سعی میکنم بهش فکر نکنم و هر بار که یه صدایی میشنم و من از جا میپرم. وقتی یه سایه از پشت پنجره رد میشه به خودم میپیچم تحمل ناپذیره. چیزی که نمیتونم بهش فکر نکنم اینه که شب گمشدن مگان ریچل اینجا بود حسابی مس بود و همین دور و ورا ویل میگشت بعدش ناپدید شد تا مدتها دنبالش گشتم و پیداش نکرد تعجب نمیکنم اگه اون کاری کرده باشه هیچ ارتباطی بین ریچل و میگان هیپول وجود نداره من با افسر پلیس صحبت کردم با بازرس گروهبان ریلی هم وقتی که ریچل رو توی خونه هیپول دیدیم و گفتش این موضوع هیچ نگرانی نداره گفت اون فقط کنجکاوه و یه ذره نامید فقط میخواد درگیره چیزی باشه احتمالا درست میگه اما بعدش به این فکر میکنم که اون پا شده اومده خونه من و بچه منو برداشته یادم یه یاد چقدر وحشت کردم وقتی اونو با ایو کنار نرده دیدم. من به این حراس فکر میکنم. به سردی لبخندی که به هم زد وقتی پشت در خونه هیپول دیدمش. بازرس گروپان ریلی نمی دونه که ریچل دقیقا چقدر می تونه خطرناک باشه.